اللهم نشیطان را جیب سمت الحمد لله الله خالد الله مفتاح جن مشارکت راجع به بحث حجیت زراحل از خبی مفهوم نیزای کنمی تفسیر بین محقوصه لئه و غیر محقوصه قائل شدن که احتمال هست اصل این تفسیر از همون عبارتی باشه که مرموم صاحب معالم در بحث خواب مشافه احتمال هستی آلوال علم و از چون که کلام مرموم محفظ قومی رو در حیرت بر ما از دو جایه نگاه بکنیم یکی اون که ایشان می فرمین که مثلا روایات ما از قدیل تعلیفات مصنفین و معذفین نبوده و در تفریع واقع شده و احتمال هست قرائم مواده این متکلیم و مخاطب موجود بوده این قرار این ما مختی شده بزا این زوافر حجیت ندارند ندارن مگر از باب افاده زن مطلق این خلاصه نظر مبارکی شن. با بعض پسفی و اگر ما مجموعا احکامی رو از مجموع کتاب و روایات استفاده میکنیم این دلالت نیست این تجمیه شوافده چند کردن از شوافد این شواهد هم معمولیه میشه این یک بخش کلامیشان به نظر ما یعنی یک ذاقی دید در کلامیشان تو معروف هم از قائل به انتداد بابه ام بایمی هست و رضا احکام را از بابه یعنی زند مطلق قائل به کلکیت فتوای فقیه و توضیحه از سر در میان کلمات اصحاب ما از این شور بحث کمتر مطرح بود حتی از وقتی که بحث های مطرح شد مثل از را مطمئن به همین روایات اختفا میکردن و تقریبا حتی از فهم میشه گفت که در که آن پیش ما یعنی که معلم آدم داریم میدینیم اصلا در بحثه میشه شما بوده میشه مثلا از سر هم هم بگیم رو اینجا هر کار نکرده. اما که هم به ما رسیده و موجوده این مقارنه هست و این که اینجا تقدیف شده نصرا اینجا سوشای دیگر است. یا مثلا در نسخه دیگر یک قرنهی داره تو این مکنه دیگه نه آمده تو کافی مکنهی که آمده فقیل دیگری آمده با اینکه که مصدرشون یکی هست بیشتر از قرن دهم شد این کار از قرن دهم شد و بهترین هرسکر رو میگه کردن بهتر باشه مرمون محبه رومی یا صاحب ماده و رقالبین تفسیرن از یه راهی که ما هرسکردیم که صدور روایات به صورت کتاب نبوده سوال جواب بوده از احمد احمد سلام مخصوصا امام احمام امام, امام. امام باقر و امام کازه امام صادق در مدینه و تدریم در کوفه شده این بهتر بود هم این طبال هایی که ایمان به قفامو این خیلی راحتر و خیلی روکشندتر خب طبیعتاً وقتی در یک شهر شن روایت شمیده شده بعد در شهر کوفه اینا تدریب شدن و مدربن شدن مدربن ها سه بعدی همینطور وقتی بعد از یه هایی تاریخ شده که بر این مرزه السلام عرضه شده اجمالا قبول شده داره تفصیله چون از زونسه به روایتی داریم که بهش حمل نشده این طب چند یه اروایات یونس مثلا موضوع تایید بوده این یه جهت بحث کلامه محفظه هم است یه جهت بحثی که بحثی بگرده به زواقه کلن اونه میخواد در روایات باشه در روایات باشه بگیم اصولا زواقه لمنخواست دیگه کاما بچه این بحث کمرهی یعنی من به نظر در کلمات عصومی یک واقع شده یعنی دو جهت بحث داره یک بحثش خصوص روایات ما و اینکه اینها از قویل که نیستن بس مثلا امام و سازخ مثل الامر شافعی ندارن کسابی مثل از موحفل ما ندارن خیلی روشن. این کتاب ها تعلیفات ما هر کسی در آنها نگاه کنه برنا حجیت دارد امام صادق بسوط مشافهه بوده و اصحاب مخصوصا بعضی از بزرگان اصحاب که اگر هم خودشون در خدمت امام نوشتن حتی در کوفه م... این نوشته ها تکثیر نکردن مثال بازدشم یه روایت واحده داریم که زراغه از فتح علاه همولیت رو علوانش این که ببینیسه حضرت فهم داره نه چون محاطه احمدل و دیگر شعبه طبیعه بوده فهم داره نه نه بیسه ولفردم پس که این امام نمیشته قطعه هم نوشته, هم نوشته, هم نوشته هم به ما نرسیده ای این دیگه کاملا واضحه و احلادلی بیگه شده این آقا این بس انجام نده و این بس ها این بس ها توسعی ما توضیحات کافی داری شاهده شمیده که در هیچ کتابی از توی فیردست ما چیزی از زراره نمولن شده خود دفتن چون اگر این نوشتا و در کوفه پرش میکرد پس هم توی ارسانیده توی اجازات ما وارد شد. در کتاب نجاشی ملیون سواره کتاب خیلی استطاعه از همین کتابی من موشیت توضیح فیردستش نصفت داری مختلف عباده نجاشی با احتمال عباده و ما میدونیم که زراده سده ها روایت در افواق فقد داره استطاع که کلامی سیم بست خلصدی کلامی سیم سده ها روایت در صلاحات را حدی و سمونه دارد و اگر فرض رو این دیگه داریم فرض رو در این دیگه داریم که مرمون زراده نوشته بوده فقطه این نوشته رو باید نوام میردیم این فقطه یکی لکن شاگردان زور آن رشد کردند. جامیدن درجه کیش، آمار نوزنی کیش. پس کن عبدالله نبود که کیسه یکی شه خلیزه نه اینا به جای این سن خباستیم با ایرانیش شواهد خارجی مطلب بکنه از ما مزدور شواهد صاری که حرامانی میکنیم مطلب. که این موضوع داشت الابداس. یه بحثم بحث هجیت زباهه که بحث اغلاوی رفتی در ربایت ما نداره رفتی به عدد ما نداره که اصولا آیا هجیت کلام برای همه یا برای خصوص منقصد افهامو که مردم به اسلام محقه رو میخواهد اما بحثه از پس بنابراین روشن ما به نظر خودمون کلام مثل ساعت معاله چون ساعت معاله هم همه که از خوبی های صاحب به جان این که بخث کبروی بکنه وارد بخث سهرائی شده این که این رو تکنه یعنی اون مسار اینی وقت کرده خب شما در معالم دیدین که برد از این که بسیقه از برد موجوده در روایه ها زیاد شده سیره از که کار روزش در موجود موجود نیست یعنی داره بخث بجانه کبروی یک بخث اینی خارجی رو مطرح میکنه و عرض کرده این مردم حساب اولین که سیست حساب در مسادر شیعه مقایسه ما بین روایت متنن و سردن کرده البته در خصوص رواتی سکیدن ایسا منتبل ما رحمه الله رسیار کتاب مفیدیه و رو پدر ایشان مردم حساب کتابی در علم الحدیث داره دیر آله داره که شاب شده که و خود صاحب معالم و به سلام نفسه در مقدمه منتقلی شما دوازده قائده داره در زمان صفحه یه رسلو برداد مبارک دوازدن ما خالفاً مطابع رو دوازده بایی می روستن خود کتاب های شیخ هره آمیلی قدرده دوازدن زیاد بکنم دوازده قائده داره در مقدمه منتقلی شما که تقریبا می شو یه دوره بحثای حدیث شناسی رو مبانیش گرد شاید ثانی که مبانی حدیث شناسی رو مسابه رحشت سنته ایشان این مقدمات ایشان مبانی حدیث شناسی روی تفکرات شیعه هست. که این با تفکرات ما با تفکرات اونا تمیز داده بشه مبانی و زیر به نامش اصلا خدمتون این بحث رو صاحب ما تو بحث حدیث ما شد بحث خوابات مشافهه بوده بعد اصلا در کلمات محقق قومی حالا این یک قسمت کار بود بعد هم منجر این شد که ما در و به زن اعتماد می کنیم نه زن خواهد زن پس این چند نکته داره در کلمات مرحوم و حقیق قومی و ساب معاده که این نکات باید در مثلا یک نکتش همین نکته اخیره ممکنه ما قارض بشین باید در اثر تختی یا غیر تختی یا مشکلات دیگه با مشکلات روبرو شدن رو و دلالتش سنده صدورش جهد صدور ممکنه مشکلاتی روبرو شدن اما در نتیجه چی؟ در نهایت چی؟ خب همین مشکلات رو قبل از مرموم صاحب قوانی مرموم سید مرتضا داره اصولا مغزادی های ما دارن سا تو سید مرتضا لیکن اونا در نتیجه گیری نهایی اینگر اطمینان به خود پیدا میکنه مقدمات تو اونا میگن ما اتنیان به حق پیدا میکنیم صاحب غمانی میگه زنده به حق پیدا میکنیم از باب زنده مطلح نه زنده خاص اونا ادعا دارن که تلقی از خواهر ما به خراب به نگاه نمی کنید. تا این مشکلات تختی او بیرسختی بیشتی و بسید در نتیجه نهایی اطمینان به حق پیدا میکنیم و چند تا چراغ قانونمندینه خصوصا که دمایون میگه این مشکلات پیش میاد اها نهایی نتیجه نهایی که ما زن بود چه در البته این احتمال هست اگه هم نوشتن چون سید مرتضی هست شاید از زمان انتخاب باب علمی بوده قرائمی موجود بوده در مثل مرحوم محقق خومی که قرائن چیز با مشکل رو میشه باشه این با پس خوب دقیق بکنیم یه وحث سراجه به مشکلات یه وحث سراجه به نتیجه گیری نهاییه این کلا در محدوده روایات ما من صادقه توضیح دارم چون الان بحث اینجا نیست به نیست بحث, بحث هایی تمام بکنیم من اینشالله عرض که هم که در محل خودش که بحث خبر واحد، یکی از بحث هایی شدیدی در اصوله، حصول نه نفقط اصول خیل حصول این موقع قدیم بلکه در تسری و به اطلاع اخلاق و یعنی معظم ما در معارف دینی داره بود مثلا خبر از همون عوائل هم محل کلام شد اینطور نبود که مثلا شبار بودیم بحث بعدها پیدا شد از همون عوائل ما از امیر المومنی روایت داریم درباره باید تعارض روایت رسول الله ببینید شبید قدیمی از امیر المومنی. من سابقا از کردم در مسادر اهل در خودشون هیچ حدیثی از رسول الله در باب تعارض نه نه ما حدیث داریم از امیر المومنی سوال کردن این اگه جمع بکنم فقط هر درست و قابل قبول نتیجه این میشه که از خود پیغمبر تاروز نبوده تاروز زمان صحابه میدار شد یعنی تیجه طبیعی شدی و الله زمان پیغمبر اگر تاروزون خب اول به خود پیغمبر عرضه میتونه یارسول داشته ما شما بودیم تو فهمونیم بیروز اون تو در خب کنمول خود این نشون میده از همون اهل صحابه نقلها مختلف شد خود هم مثلا یک عراقه تاریخی دیگه میمکنه خبیر راحت رو در مسادر مایی حدیث هست که سوال رسول الله بر در فهمان موافع کتاب الله حال سرشم بد نباشه این حدیث بیشه عرصانه وجود ندارد مثلا سیار دعیبی نمشه موافع کتاب الله ما داریم مثلا در معتبر در روایت احلبه این داریم انصاف به سبوتش در رسول الله ثابت نیست و اوشند نیست ولو ما این روایت داریم منصوب رسول الله داریم وقت به هر حال انصافا شواهد انصاف نیست. حالا انشاءالا بحث در بحث وجود خبرواره شدید زاویه بحث اونجا اینه هست اینشاءالا اونجا اونتعرض میشه پس در قبل فر از همون اوائل مواحث شبر در همه جا مطرح بود خب ارز کردیم بحث حجیت خبرواره حدود حجیت تقریبا اواخر فرن دومد یه نهایی شد یعنی این بحث ها هم جبود تراکنده بود از مثلا احناف عقیده اینه که علما به قدیس عمل میکردن تا شافعی آمد و عمل میکرن. شافعی متوقعی 22-23 ولی که این کتابی که نویش نومه احرساله بحث بسیار مشوعی داره راجع به حدیث محسر که قبول نمی کن. چند سی سفره از این میشه خیلی مفصل و قبول نمیکنه کنن عدیس منصلا به تاریخ نهایت کتاب سال نهایت چار باشه اگر حافظی من خراب نشده باشه یعنی سه از کتاب زمان از در اگر این حرف درست باشه هر فهنا آنی که میخواد مقدمه و رایه این شهر محمد زاهد کوسری اکدام میکنن چون خدا میتقب نکردم و این مرد مردم مردم حنفی هست. علیدا ما ثوان انصافاً ناجی مولا مرد ما واقع محدث و حدیث می یه اولما تا زمان شافعی به حدیث مرسل عمل کردید خلاص بعد از شافعی قرن دوم یه تقریبا حتی اهناف هم کم دارن حدیث مرسل دیگه تقریبا شد استاندارد علمی تو به که به مرسل عمل نکنه دهن یه مسئله 200 سال چن اینقدر اخذورت شده اینقدر جلو بعد هم تا حدود سال 200 دیگه نظر نهاییشون بر شد که حدیث و قبول نکنن من میخوام یک از اونجوری بحث حدیث کنید الان فقط یک تصویر اجمالی رو در ذهنتون ببرید خب خاری نهایی با آمدن معتزله که عقلی گرا بودن یک تکان کلی به حدیثه خود ابو حنیفه میگن این شد در خود احناف قبول ندارن این مطلب رو وندان خدای مراجعه در کتاب ابن خلدون مقدمه ابن خلدون نقل میکنه که ابو حنیفه صحا هستند احادیث رسول الله سبعت عشر حدیثا فقط گفته جه حدیث صحیح خود اهناف اون جمله های مقدمه رای میکنه میکنه ابن خلدون رد میکنند مشکل در قبول این مطلب ابن خلدون در مقدمش گفته محل کلام بین خود اهنافه آه این مذهب ابو حنیفه که خودشون حنفی هستند درستی یعنی یا چون این خیلی خاجه از دیگه ابو حدود خوده 150 برای اینکه سو روشن بشه 100 سال بعد یعنی یک قرن بعد از راجب احمد از و نهنبر یک میلیون و 700 هزار حدیث بیده بین 17 تا یک میلیون و 700 هزار در این تفاوت چقدره یعنی در قرن قبلی میگفت 18000 حدیث 17 دانه 9000 18 حدیث سر طی سحر من احادیث رسول و مثل احمد بن گفتن این مسند رو از 1.7 میلیون حدیث استخراج شده تناسب نسبت رو میخوام براتون عرض کنم حالا شواهد این که بضاعین و کذابین و دجالین تا چه زمانهایی اصلا سر عادت یعنی براتون تعجب آوره که سازه که در قرن سال ما صحابه رسول الله اون روش جل میکنه نگه جل حالا فیانوی در اول دوم بود ما در میانه عبد و معمر مهربی و غیره به ندی دنیا باید رتن هندی اینها سالهای شیستن حالا ما صحابه رسول الله هستیم و حدیث نمتن رسول الله سال تو مسادر ما هست مقدمه کتاب قوال لالی احوال لالی احادیثی زینا که سال شیستن هستن رسول الله وضع حدیث و جه حدیث این ادامه پیدا کرد تا سالهای بعد شوالا من فقط هم اون سالهای دیویس بوده قرار این که خب مکتب عقلیگران هم آمد این مشکلات حدیث بس مسئله حدیث و تصیح حدیث و قبول یه مشکل قدیمی است اینطور نیست که فقط محقه قومی من البته اهل سنت انصافن بعد سالهای دیویس خیلی زحمت برکشیدن من همیشه هم از سر اولا سا... مهدسینشون زیاد بودن وقتی مهدس بزرگی میامد یک ارغام غیب قابل تصوری این عمالیه به نظر شیخ مفید گوشه یکی از عبارات که رو جمع در مقدمش مثلا دیگه که فلانی آمد در بغداد حدیث کرد گفت و بعد وقت در اون زمان اینجوری بود از ارغاماش خیالی اوها نمیم مثلا میاندن اونجا رو نهست میکرد زرد میکرد پس در هر مثل منبدون هم با ذر که برد کن تخمیلی که زدن حوضه هزار نفر گوش داده بودن از اینشه هفتار در یک مجلس واحد ده هزار و بیس هزار و سی هزار همینطور در عبارات اونها وجود داره سر به اینکه ماها رو نسخه شناسی خیلی احتمام که این مثلا کتاب حدیث سه نفر در همینطور با مثال کاب اونا از بس زیاد بود از از زیاد بود یه اتیاز بیمسخشی ناسی در پیشه به اصطلاح مملی یا محیط داشتن بلندگو هم که نبود. مثلا استاد اگه میشه به فاسه ده متی میست به فاسه ده متی به فاسه ده متی تو این هم بیرسداد تکرار میشه به این صورت صحبت های هزار نفر و هفتزاد هزار نفر و ده هزار نفر در میان مثل زیاده. تا 70 هم دارم در بغداد خدا حدیثو نفر هم روشه مال ازره دو تا تا 400 هزار نمیشه شده در که یک اقوام یعنی واقعا که تصورش برای ما همشه پس این مسئله یک ای مسئله جدیدی نیست مسئله تفسیری که ایشون فرمیدن مؤخر هم این تخقیق در کتب اهل سنت هم فراوانه فراوان در بخاری که کرارن ترکیه یعنی زیاد تقدیه خیلی زیاد خوب قلبازه زیاد و گاهی شده یک قصه واحد که ازش چند تا حکم بوده هر یکی کش یک کتابی زیده شده این مسئله تختیه مسئله متعارفی بود همین کتابی که الان شما دارید این نهزه بلاده اینقدر کش تختیه داره که براتون وارتنش مشکلی یه خصصه رو یه ج نح میکنه باز مثلا بعد 20 سفر می من خصص پ م است گاهی میشه که بر در کلمات فس که بخش سوم محدیبال هست باز میان آدم وقتی به اصل عثر مثرمراجعه حدود دو تا خصوه باز 20 تا از این کلمات فسار کللا چی بوده مردم شگر باید که خیلی ممسل اون ترک اینها رو تثییه کرده مشکل تصی مشکل خاصانی دقت میکنه. یه مشکل عمومی تا درگیم چون وقت مناسونی تو از اینقدر شواهد تختیه هست و احکام رو هم در اشتماع زیاد کرده که بام توضیه کده خیلی در خود کتاب بخاری الا ماشاءالله در بقیه مسادر آمه الا ماشاءالله بردار در مسادر ما و من ارض کردم اون تختیهی که الان متعارف ماست مثل وسائل و بهار و اینهاست و که مشکل تختیه در مثل کافیه از او بزرگتر که اون کافیه مثلا سیرا و حسن معلوم تختیه شد. این باز مشکل وزرگتر رو اونجا داره لیکن همیزار که اون روز عرض کردن وجود مشکلات منشع نشده که ما از حدیث در بر... درست بردازیم یا چیزی های رو کنیم مسادر رو هم شده اصولا یک نقطه کلامی هم در اینجا موجوده خیلی از بحثای قصویی و اون نقطه کلامی اینه که که این شریعت مقدسه با عنوان خاتم شرایع الاغیه و سماوی است، حتما خداوند متعال و احلبه و احمد علیه مسلم نقشه جویی شده که باید در مقام بیان هم این صلاحیت داشته باشونه نه فقط تو مقام تشکیه و جمع چون تلمی خاتمی در این شبیعت یک لفظ نیزه واقعیت است. این به این معناست چون چه که انسان احتیاج داره به وحه به ارتباط باقی تحصیل فیغمبر گفته بگه چی نیست که از وحه باید بیا اون که هست باید با روح وحه به عنوان طبیعی به مرزان گفته چه که اصطلاح ما امامت امامت ما با خلافت اونا فرقش هم دیمه لذا چون این شریعت شریعت خاصه که در قرآن هم به عربی مبین بیان و ما که نمعذرین حتی نه به رسولا رسول صرف اساسی مطلب یک نقطه کلامی هم حد و غیر از کلام بحث اصولی یعنی بحث سر این بوده که این اینا نه نظر من زد اینا حافظون از قرآن کریم زد هم به خود قرآن اطلاق شده و هم در رسول الله اطلاق شده و سلام علیکم زده در صوره طلاق در صوره طلاقی های هم در رسولان نیفت و علیکم آیات الله هم به خود غیرنبر اطلاق ذکر شده و هم به خود قرآن ولذا یک نکته کلامی هم داره مثلا فقط نقطه اصولی نیست همچنان که خود این شریعت مقدس خاتمه حتما مناسب با شعن خاتمیت باز مراقل تبلیغ و انذار و ایسال هم در نظر گرفته شده. من چند با اینای رو کندن به عنوزه کن بهی و من بله از که دیگه تعدیبه تو قرآنی انزال در اینجا به معنای به اصطلاح همون مرحله ابراز و مرحله تشریف اقصاد رسول و انزال کتب و من بلن مرحله سعیت در افراد که ما اصطلاح هم مرحله تحجی هست لعنظر اکم بیریا من یا در آیه مبارکه ولیانظر و قومه هم اذاغه كم اليهم لعله هم, هم یعذرون این یعذرون هم مرحله امتثالی که ما میگیم اصطلاحاً چیزی بهش مرحله امتثال قرآنی یک جور اصطلاح اصولی میگه پس هر قطع نظر با این مشکله باید در نظر داشت که منهیث المجموع شریعت مقدسه چه به لحاظ کتاب و چه به لحاظ و چه به لحاظ خود جامعه اسلامی این سر این که این حدیث رو عبدالسان الله تشتماع اممتی علی خطا گفتن خود این هم یک مفتر ایست یعنی اجتماع اممت نه اینکه یک گروه معیل و بعد مسئله مهمی رو که شیعه به خصوص مفتره برکه مسئله امامت ماشه مرحومش سید مرتزا و بخدازی ها اگه در, در احتجاجاتشون در مقابل عقل سنتشون هستن زمان آل بغی بغداد علم شیعه در بغداد افکارشون در مقابل اهل سنت مفرح میکنه اینجور نمید که مثل قومی های گوشه بینشینن و برای خودشون مطرح بکنن سید مرتضی رحمه الله اصرار داره که اون امتی خطا نمیکنه که طبق کسایی این... چرارا به اونها مفرح میکنه که در او امام محصوم باشه ولذا از کردیم مرحوم سید مرتضی رحمه الله و بقیه علمای برداد ما خوبیقتت بکنید در مسئله حجید خبر این حال تقریب برده هست سه شاهد اساسی و همیشه در نظر می شد یکی شواهد اغلایی هم شواهدی که روز دانشده دانشگاه هست اینقدر کتاب ها مثلا نصحای خکینه همتماد ارسو خب راه هایی دارن برای تقس اثبات این مثلا این کاری به دین و دیانت این محلن. یکی شواهد اغلایی دوم شواهد کتاب یعنی شواهد اسلامی سوم شواهد خاص مزدن این اجماعاتی رو که سید مرتزا ادعا میکنه در حقیقت همون شواهد خاص مزدن سه مرحله شواهد وقتی نتیجه نهایی که سید خوب دقیقه بکنید فرق بین محقق قومی و سید مرتزا در این می شه. سید مرتزا که با اعمال این شواهد اطمینان به خوب پیداره و انصافاً مطلب سید کاملا دقیق دقیقه انصافاً مطلبی سیار دقیقه و باقت نظر از مسائل اصولی با مسائل کلامی هم همین می سازه عظمت خاتمیت اختضام میکنه، یعنی حالا در محقق قومی و دیگران شد موجوده در آزم اختبار از عظمت خاتمیت اختضام میکنه که لاعن که خود بران و علم شبارد و تا اونجا رسیدن که بوسیقه اتنیان پیدا میشه نه زند مطلب یک در مقام اثبات کنم با یک با مقام سبوت داشته بازیم تو مقام سبوت شریعت خواهن برگوزیم تو مقام اثبات زن مطلب چه بیدارید؟ خیلی مدد دور از آبادی مرمون سید مرتضان احمدالله اعتقادش میدونم من این اثبات هم شوزیم که یه مقدار تحبیرش تباییدن میشه با که حالا از تحبیراتو خاص خودمه من همیشه اصلا در مجموع حجی از خبرگاهه چند باری هم از پرنس در سن نداره. به طور کلی در کلی تاریخ اصوانی سه, ز... سه دیدگاه اساسی وجود داره که میاشه که هم سه دیدگاه اساسی وجود داره. و خود شما هم که الان باید بحثان بشین باید یواشا باشید بیرگانشون رو مشخص بکنه اصلا تمام ما آرده دینیم رو این بیرگاه اینجا که میگن یک بیرگاه کسانی که حجیت تحبودی قاعده مه در حجیت تحبودی قد قلقه قبل شوشیم اگر ما قاعد بشیم که شاره مقدس یک محیار واجبی و قرار داده و طبق اون میار هر خبری که واجد اون میار و چه حجرده؟ میشه حجرد تر بودی این اسمش حجرد تر یعنی شارع به ما بخش شما باید حسن این کار رو حالا این محیار چیه؟ مشهور به نحن سنه از ادارت به خاطر آیه اینجا از اون خواست آل کویی میفرمان یعنی این رو و اغلاق هستند هستن در تعبود شاره هم امزاده هستن خلاصه کنان از دیگر اخباری از ها مثل صاحب و صاحبه میگه وجودش در کتاب مشکوره هر خبری که در کتاب مشکوره هستن حجیه تعبودی هستن مخاطر یک رواید که در دوم هم جواستان به حجیه تعبودی پس این کلن مساله زیاده هستن نمیخوابار به بحثش چون از زرس مخارجی این ها میشه میار نمیشه اساس خجیت خبر خبرگاهه این ها خبر هستانا مشتری هم زیاد در دوندوری اسلام زیاد دوم خجیت خبر خبرگاهه در این مسئلت مئیار نمیدرستتون اصلا دیگه بساقت ادالت وجودش در کتاب مشهور مئیار به شما نمی ببین شما باید بگی همین شواهدی که همیشه آورده دارم شواهدی از کتاب شورای اوغلایی شواهد مذهبی شواهد خاص پیدا بکنید و بعد از وجود شواهد بگید این متن حجت داره بعد از پیدا شواهد مجموعه شواهد رو شما ابهامه کنید بگید این متن حجت داره و طارق اساسی این دوتا تا در بحث بسیار مهم تعارض می نوعی مقنی اول تا معنا داره چرا؟ چو؟ چون میگه هر خبری که فرض داره یکی از کتاب های مشروب رو ممکن مکنی در کافیه خبر اونجا معالیش هم در کتاب قلیه باشه کتاب مشروبه چون در اونجا تعبد هست و بیار واجد تا آرز اما کسان که میگن حجه تو اقلیه خبر تا آرز هستم نداره تعارضه؟ چون میگه ما شواهد جمع میکنم اگه یه خبر میکنم بگیم حجرته خب اگه معارضاش اول بود معارضش بردیم تو میشه شاهد باشه باید وصور و اسمینان با اون خبر پیدا بکنیم این مبناه دوبار و نظار هر کسی و نظار شما میبینید در قدمای ازها مبانی فعاروز خیلی این طور مفرح نبود که بردار شده چرا شما قاید به حجیت قاید به وصور بودن به خبر مختن این جوامع حدیثی چون معظم اهل سنت نه اشعاری به خصوص قائل به حجیت تعبدی خبر اشتباه نشد به خلاف شیعه بغداد به خصوص و حتی شیعه قم حالا بحث خبر از در ما اینا توضیح ندیم گریم فعلا قائل به حجیت تعبدی نمیدن قائل به حجیت عقلاوی بودن اما ان شاء توضیح خواهیم داد حجیت اوقلایی در برداد بیشتر با ذوابت و اغلاقی بود در اون اغلاق یعنی شیعه یعنی, یعنی علمای ما یه مقدار تمالش با مشایخ بود نه اغلاق به ما هم اغلاق اغلاق به ما هم متدقین و دو آنی دوتا یه فرق میکنیم این چند تا مردون دو تا مردون سوم سه هم که تانیدو که اتن قالب وزیر خبر نبودن از این ها چی میگفتن قرارشون با دومی چیه، دومی دو خبر رو به عنوان یک دلیل لحظه قبول می کرد دف اول دومی. دو نقطه مشترکشون خبر رو به عنوان یک دلیل لحظه قبول میکرد کرد اطلاق داشت رو ازار تماس میکرد کرد. عموم و بهاموم توسط فقط این میگفت گفت داری اون گفت با سوار بکنی بکن. این دوتر این گفت. اما در ق سوم خبر رو به عنوان خبر قبول نمی شد. دنبال موسوق به اکتنان به حکم بود نه به حرفت ما بعد موسوق و خود حرفتی که این شواهد بود نکن پیش اینها بیشترین شواهد تلقیه به قبول بود با قول سلونزا اجمع یعنی راه خوبی بود که ما پیدا می برای ولی که بیگه رفت موسوق پیدا بکنیم شهرت اون حفت بین اصحاب تلقیه به قبول بین اصحاب البته خبر هم توش بود معایلش بود خود خبری که از شباهد بود ولذا این طرفه به خبر به عنوان دلیل لحظی رو داه کرد. کردن حکمش حکم دلیل لبی داشت خبر یکی از بود به شباهد دیگه هم مراجعه می کردن ارز کردن به شباهد اقلائی به شباهد کتاب سه یه مستزا جزه اینا هست نشد سید مرتزا و لذا اگر دفتت بکنی در کتاب انتصار که اصطلاحات دیده دلیل نا الاجماع دلیل نا الاجماع گاهیم ممکنه ایوان و غرب و ان رسول الله هم نهو انسان نگاه میکنه خیلی اعتمادش رو مرس بیشتر اعتمادش رو حکمه کاری به محن حدیث نداره. و لذا این مقنی آقایان اگر یک خبر واددی باشه فرسن 6 فقره داره 6 تا حکم داره دوتاش قابل قد مشهوره بین اصحاب دو تاشان رد شده دو هم مختلفه اون دوتایی که قبول دارم قبول میکنه به بقیه خبرم کار ندارم یه خب بقیه خبرشان رو قبول نمی کنی چون اون دنبال خبر میگی دقیق کردیم اون دنبال حکمه این همین جایی ای که بین سید مرتضا و بین مثلا محقق خومی مشکل پیدا میشه رو دید اینجا الان محقق قومی در روایات به لحاظ مقام دلالت اشار کرد نتیجه چی گرفت؟ نتیجه این گرفتی اینها از باب زن خود ما این اشخال اول گفتیم سید و هم در روایات اشخال کردن نه به خاطر فقط دلالت به خاطر سند، مزدر، فاصله زمانی، کم و زیاد، نقل به معنا چون هنس کردین در روایات یک مرحله که از قرن دوم شد به این اهل سنت تا نقل معنا جایز یا نه مشهور اهل سنت گفتن نقل معنا جایزه در کتاب حدیثش موجود اگر مراجعه کنید هم گفتن موجود نیست از مسادر قدیمی در علم الحدیث اگر مراجعه کنید در این جلد بهتره کتاب کفایه هست کتاب کفایه فی علم روايه جرایم محسوب شده مرت مال ختیب بغداد دوست مسادر بسیار خوبه خود حاكم نیشابوری صاحب مستدرک چی؟ معرفت علم الحدیث علم هم چه اسمی داره اولین کتابشون که تارام چاپ نشده بود یکی سال سالی سی سال از چاپ شده المحدث الفاصل مال رامگرموزی" برموزی این همش در صورت حدیث خیلی مقایمش واضحی اولین کتاب در علم الحدیث بین اهل و نه به نام المحدث الفاصل فاصل نکنیم المحدث الفاصل باساد بین احرامی و الوایی کتاب خوبی آموزش کردن یه مقدار شیمونس انسان خیلی صاف یه در درنیست توی موسسه کاری میشه و هنگام علی کایی ختی مقدار کتابیه انسان یه دوره ای رو ببینه بعدها هم کتاب سیویک در رنده ها نوشته شده تری باز میشن کتاب خوبی اخیرا هم از دیروزشون شده خوبی نوشتن که دیروز این بحث اشتباه تی مطرح پس و نادر این کوب پس این رو که مردم محقق قومی مفرح کرد و ادعا کرد انصداد بابعه ای این نیاز به انصداد نبود این از قدیم مفرح شده بود یعنی از سالهای همون 150 و 60 اینها مفرح شد مشکوره به اهل احل سنت حجیت تعبدی خبر شد تا که من الان توی ذهنم هسته اینکان نسبت جازم دادم یادم نمیاده از بزرگان ما کسی قائل بیگن رعی باشه تا زمان مثل ابن ادویس و علامه فکر نمی کنم تو ذهنم یک کسی بگم حجیت تحبودی خبر بگه این خبر صحیحه یا این خبر رابیش تغصر ازا ما تحبودن قبول بکنیم تو ذهنم نمیاد بله دی در بغداد. با شواهد خبر را قبول می توانید که هیچم شیفه در قوم هم با شواهد قبول می که بیشتر شواهد به مشایخ و مسادر در میگرده که ایسا در بحث ای بگن در وقتات مثل معتدله اصلا دیر با خبر نداشتن کلا. اینا از این باب بادر که ما در تک تک با باید موسوح پیدا بکنیم با, با جمعاوری شواهد و با مجموعی شواهد او سوغ به مهمه نه او به متن خرده و نزا عرض کردم که چند را در این مجلس عرض کردم سیده ماتزا کل ممنوعه یک نمیشه یعنی مجموعه هنشید سرس نوشته به اونجا تارز نست بعد تارز راست که الان به تارز یک یک نمیشه بگه ما اصلا بعد چون قطعاً این طوره اگر در مقام روایات متعارض باشه او باید بعد از حل تعارض و جمع آوری یک وصولی به حقی برسه او اصلا تعارض ولی زمان شراراً ارکنیم مبحث تعارض خوب دفت بکنیم این مبحث تعارض بیشتری نمودش در اصول شیعه بعد از است. اصلاً خود کلمی تعارض و من دو اگر هرش از کاتی فرامی فرد تعاور دوسر فراغت هردوش رو جد نواشند که تعاور ارزش داره که دنیل لا جد است، دنیل هوچتر لاهو داره گرفت نشده تعاور نه تعاور دوسر هوچتر که این کارشان یا والی دوچرخه به روایتی یا والی دوچرخه به هوکیه او اصلا هوچتر نداره که تعاورشش میگه لذا من چند شنیدم جهش کردم چون یکی که من دیدم میگه وای مراجعه کنه. در هیچ یک از روایاتی که ما در واقع تعارض داریم لفظ خود تعارض به کار برزه نشده از هم از عجابی روزگاره مثلا یه یعنی از یه حدیثان متعارضان نداریم نمیدانی دقیقی یک بحث لغمی هم داریم که این ماده تعارض چه معنات این در اصول از احل سنت یادسه یعنی شد تو اصول ما هم آده ما اصلاً در خود قرآن که نداریم لو کار من عند الله لوجدوا فيه اختلافا کسی و اختلاف داریم تاورد داریم در تا, تا رو به استثنای در مرفوعی زوران در کتاب ابوالله علی احمد در مورد و مصالحان که علامی که از علامات ضعف است حدیث کلان از به هیچ وجه قابل استدلال به استثنای این روایت که روایت امیس و جهلی کاملا یعنی اشتباه شده این ده شده اشاره بده به استثنای این ما اصولا در بحث تعارض هم رو نداریم یعنی اگر حدیثان مختلفان داریم حدیث احد و ما و الاخر یعنی اینم دو چیز میقابل بس انعقاد علم موجود نفس لعزه تعارض رو اصلا مضمونشون هست لذا خود دقت بفرمایید این یک نکته بسیار مهمی بود و لذا من کرارا نهارد ما در قدم های حساب مسائلت ترجیح هم نذاریم اصولا لفظ ترجیح فرض در گدیت که در این دقت کرده بودیم هم لفظ تاروز به کار بردن تاروز فرض بر گدیت فبر اینه هم به کار بردن ترجیح فرض بر گدیت فبر اینه. چون باید سرسه این همه حجت اون هم حجت این مرجعه میشه ارده اما اگر شما گفتی نه ما باید کم بکنیم تا وصول پیدا بکنیم بعد از وصول حجته تا ترجیح هم که من رو از اینجای ترجیح نیست ولذا مثالت اصحاب ما در ترجیح که را را کردن در حقیق هست اگر وحس شدونم بسند بعد از قرن هشتون در شیعه وارد شده این متعلق شده بودن. بعد از قرمه هشتم مسالح ترجیح اصلا روایت عمر النهانزل رو از قرمه مثلا مو به بعد که به با عنوان بابت ها آرزا ترجیح رو که ما هم قبول ندیم روایت در باب ترجیح باشه، جا که ایده نیست صورت دیگه هست که اینشالله اینچون در دو حسابه تو بحث عمر النهانزل مفصل عرض کردیم. کردید اصلا این روایت عمر النهانزل رو ناظره به ترجیح نیست یه تا بعضی از این روها ترجیح به مردیات غیر منصوص هم کردم اصلا خودش توی که مردیات غیر منصوصی نداره داره غیر منصوصی رو بخواد تحضیب شو کنه. که سخواستی پس یه بحث راجیه به مشکلیست که الان ما در رویات داریم من توضیحات شهر سردن این مشکل قدیمیست به زمان محقق هم بر نمیگرده اهل سنت مشکلات خاص خودشون دارن ما مشکلات خاص خودمون داریم اما این به معنای تسلیم ما در مقابل مشکلات نیست این ها میشه همه حل کرد یا به عبارت دیگر در اثر خود قرآن در در اول و رسول الله و اهل قید جوری شده که با تجمع شواهد میتونیم وصول به احکام پیدا رو اینطور نیست که زن مطلق باشه ما با خود بود جزا در حد به خودش این در بحث بعدی هست پس این راجع به بحث اول ایشان و تصویر این بحث و تصویرش رو بیان شواهدش این دیگه میخوره بحث حدیق خبر و واحد دیجاش ما مشکلات داریم اما مشکلات قابل طلبهی بر ما هستیم و آخرال امر هم به زن مطلق نمیرسیم بلکه شواهد مصور و بغدایی مجموعش البته خب بعضی از شواله ما مذهبی دینی طبیعی در همه اوایل در دنیای مذهبیات در الان در دنیای خوارق چهره ای الودار که معتصبشون اون نشینه در هیچ کتابی از وجود تاریخ انسان اسونن این فقط توی دنیای خود رو عنوان دارن این هست ما الان داریم که همین توی دنیای خود ما نام عنوان دارن حتی ما مثل ملا در فلسفه داریم که الان تقریبا در دنیای عرب یعنی در دنیای سنی‌ها نه فلسفه سنی اسم ایشون تمام مطرح نیست چون دنبال عرضه ملاصدرا نیست. این مناقضی با اون عظمتی که پیشش آور داره این تقریباً محدود در دنیای شیعه در دنیای اهل سنت هم این اشاره‌ها می‌شدن منظور خودشون مکاتب عشای است. اساس صحبت‌های ملاصدرا با اصفار مطرح نیست. این میشه یک شخص از بزرگی بود ملاصدرا فقط محدود بشه به فکر رو ممکنه فارسی دوای احمدسونا خطر محذور نشه ولی به نمودی که از عجلا و بزرگانه. این رو ما داریم نباز این رو این کار بکنیم ما وقتی میگیم شواهد و این نمیشه تو ریز مطالبی که مربوط به هر مذهب شواهد و اوغلایی قاام میکنه اینا چی تو غان اینا بران خواوش نگاه کنن چهرهای دارن که ما هیچ جای سونا نمی تو مست... توی فاطمی ها و اسماعیلی ها چهرهای مذهبی جای دیگه سونا این ما با مجموعه این سه شاهد یعنی خوغلایی اسلامی و مذهبی خودمون خاصه شیری شواهد بسیار پرامانه و نوبت به عمل به زن نمیرسه توضیحش تو بحث و جده خبر این کوران این یکی طرف برد اون بحث دوان فردا بحث زواهد به طور کنید